کی شعر ترانگیزت خاطر که همین باشد یک نکته از این معنی گفتیم و امین باشد از لعل تو گر و من گشتری زنوار صد ملک سلیمانم در زیر نگین باشد غمناک نباید بود از طعن حسوده‌ی دل شاید که چو وابینی خیر تو در این باشد هرکو نکند فهمی زین کلک که خیال انگیز نقشش به حرامر خود صورتگر چین باشد جام می و خون دل هر یک به کسی دادند در دایره قسمت اوزا چونین باشد در کار گلا و گل حکم ازلی این بود که این شاهد بازاری وان پردنشین باشد آن نیست که حافظ را رندی بشد از خاطر که سابقه پیشین تا روز پسین باشد